از جلوی اتاقک که نگهبانی فرهنگ رد می شدم. دوست داشتم بروم و دستهام را روی آتش پیت روزنم فروش گرم کنم. اما ترسیدم بوی دود بگیرم. بوی دود را دوست دارم اما نه هر جایی نه در شبیه که راندوی عاشقانه دارم. بوی دود بر روند راندوی تأثیر نامطلوبی می‌گذارد. چرا گیر دادم به بوی دود حالا. مهم این است که من طرف پیت مرد روزنامه فروش نرفتم و به شمردن حامد بهدادها و فرستادن و خواندن اسماس قناعت کردم. وقتی میرفتم داخل محوته از جلو که نگهبانی دیدم حراست فرهنگسرا جلو ورودی باغ بالا را زنجیر انداخته تا کسی نتواند سرخود برود توی باغ نمیدانم چرا مسئولان محترم نه دل دارند نه حس زیباشناسی یعنی واقعا نمی‌دانند ترکیب برف و سنوبر چه ترکیب محشری می‌شود. چطور دلشان میآید آبران را از ایستادن زیر درختان سنوبر محروم کنند و عین خیالشان هم نباشد. نیمکتی که رویش چند سانت برف نشسته است. تا صبح زود از خواب بیدار شده ای و وقتی پرده را پس زدهی، دیدهای شهر سفید پوش شده. زنگ میزنی به عاشقت که آشغ بیا برویم برفوازی در پارک بغل خانه ایمان. همان آشغ بازی است. عاشقت بعد از کمی قرولون که حالا چرا صبح به این زودی قبول میکند. مثل همیشه ای به چشم سایه با کالاسگی سلطنتی میایم دم در خانه اتان. همان بوغ همیشگی را که زدم گلوله کن بیا پایین تا برویم برفوازی یا به قول تو آشغ پارک خلوت هست و هنوز بچه در و همسایه بیدار نشدن تا بریزن پایین و برفها را زیر و رو کنند. می روی روی نیمکت چوبی دراز می و سعی می کنی فراموش کنی که مثلا فردا امتحان استاتیک داری. عقل سلیم میگوید گوید در طول تاریخ به استاتیک و اینجور مسائل ارجحیت داشته است. آشقت یواشکی از پشت سرت سبز می شود و یک گلوله برف می آید توی صورتت. تو میگویی عاشق جان مگر نمی دانی من از این شوخی های شهرستانی بدم می آید؟ دو دستی درخت سنوبر کنار نیمکت را تکان می دهی، برفی که روی شاخهای سنوبر نشسته روی سر و صورت آشقت می نشیند، آشقت سفید پوش می شود، عاشق سفید پوشت دستهاش را بالا می برد و میگوید تسلیم، از جیب پالتو پوست قیمتیش جعبه مسلسی شکلات تاپلرون را بیرون میآورد و جلوت می گیرد. می آشتی تو آشتی. خرکی می‌آیی و ابروت را بالا می‌اندازی و می‌گویی نوچ نوچ. میگوید اینکه این که رشوه نیست. پیام آشقانه است خنگ خدا. تو نیشد تا بناگوش باز می شود. آشقا همیشه می توانند دوتا گوش مخملی روی سرت سبز کنند. میگویی آاشق جان، حالا بیا یه ماچ برفی. بعد از کلی فرنجکیسه با شدت تکه گند ای از شکلات عاشقت می کنی. شکلات را با دندان نصف می کنی و نصف بیرون مانده را به عاشقت می دهی. همه چیز در زندگی باید 50 فیفتی, فیفتی باشد. فیلن که جلوی باغ بالا از این زنجیرهای آهنی که در فیلمها به پای زندانی ها میبندند کشیدند و این یعنی تا اطلاع سانوی ورود به باغ برفی و آشقبازی ممنوع. مسئولان نامحترم زیبانشناس بی احساس که حتما قاطیشان مدیر گالری و بازبین تئاتر هم پیدا می شود، هر بلایی سر باغ بالا بیاورند نمی توانند سر دوست سگان سگانه بیاورند. دوستجانهای های من ضد زربند. میروم بغل بقل دوستجان برونزی کتب خان می نشینم. دوستجان سویلو این چند سال که میایم اینجا همه کتاب می و هنوز هم توی همان صفحه قدیمی مانده است. اگر یک کتاب مذهبی بود می گفتم چی دارد میخواند چی بود آن حدیث حضرت علی که روی برد دانشکده فنی خانده بودم؟ واو به واوش را با یک بار خواندن از بر شده بودم. دوست شام بررانزییم حتما دارد همان حدیث را در این صفحه میخواند که این همه سال محو شده و سرش را از کتاب بلند نمی کند. شهری از شهر دیگر به تو سزاوار نیست و بهترین شهرها شهری است که تو را در برگیرد. دوست جان دیگر بس است کتاب و کتاب خانی دارد دیر می شود. وقتش است زن بگیری و زند برایت بچه های قد و نیم بیاورد تا نسل و اسطوره ها از روی زمین برداشته نشود. خودم برایت آستین بالا میزنم. زن مفرقی میخواهی یا زن برونزی؟ بماند که فعلا یکی باید بیاید برای خودم آستین بالا بزند. سامانخانه حامد بهداد احتمالا حالا از دوراهی پارک جمشیدیه هم گذشته و پشت چراغ قرمز نارون است. حتم دارم دلش میخواهد برود توی مرکز خرید نارون و سر و گوشی آب بدهد آن شب توی پاساژ گلستان معلوم بود که از آن پاساژ بازهای حرفه‌ای ایست. از نگاهش به ویترینها و برانداز کردن مانکن‌ها میشد خیلی چیزها حدس زد من ساکت بودم عین یک ای درخت متحرک که گاه جلوتر و گاه عقبتر و گاه همپای باغبانش راه می رود. درختی که تمنای باغبان را برای سخن گفتن احساس می کند و می داند اگر لبوا کند هم حال شاخ و برگهای خودش بهتر می شود هم حال باغبان. اما درخت فقط یک درخت است. چه متحرک باشد چه ثابت. درختها هیچ وقت توان حرف زدن نداشتند. از کنار دست دوست جان برونزی بلند می شوم و راحتش می گذارم تا برای نه میلیون و چارصد و سی و هفت هزار حدیث قشنگش را بخواند و دعا به جان امام اول بکند که چنین قسار قصار تر و تمیزی گفته میروم توی کافه، کافه لوکس لکس، مشتری های لوکس پیش های لکس که پیشبندهای های سبز همشکل دور کمرشان بستند تا مشتری های لوکس دکمه هرمی روی میز را فشار میدهند دهند، سر می رسند. سفارش می گیرند یا سرویس می‌آورند. آورند. می میز آخر. چسبیده به پانل پلاستیکی می نشینم. اینجا نزدیک بخاری هستم. پانل پلاستیکی آیق حرارت است. بخاری زیاد که روشن بماند، ممکن است پلاستیک آب بشود. پلاستیک آتش نمی‌گیرد، آب می شود. توی خودش جمع می شود. سیاه و کدر می شود و عین شم شره می کند. زیادی که داغ شود ممکن است مثل موم شم جاری هم بشود. جاری نمی شود. توی خودش جمع می شود. من هم پلاستیکیم. عروسک باربی سخنگوی پلاستیکی لاغری که سردش است و یخ پوستش بغل بخاری باز می شود. عروسک امشب یادش میماند که خودش باید وسط سینه را فشار بدهد تا حرف بزند و آواز بخواند. سامان این کار را برایش نمی کند. دیوانه، فکر کن که بکند. جمع جم، آنم بار دوم که میبیندد. <تصفيق> بار چندم است که سامان را میبیند. شوخی نیست دو سال هر شب با رؤیای قهرمانت به خواب بروید. قهرمانت هر شب از واقعیت محدودت به خیال نامحدودت بیاید و در خیالت بال و پر بگیرد و لانس آرمسترانگ بشود در واقعیت تو حتی یک قدم هم جلو نمیگذاری تا بشناسدت شوخی نیست نسیم حالا کجاست؟ میخواهم با نسیم از سامان حرف بزنم از همشهركی سابق مان دلم برای آن ها تنگ شده نسیم؟ امروز آموزشگاه چه خبر بود؟ آن دختره دوباره به سامان گیر داده بود؟ یا لا حرف بزن؟ چند سال پیش بود؟ دختر و پسر قرار گذاشتیم آخر هفته با دوچرخه هامان برویم پیست دوره دریاچه آزادی و یک مسابقه خودمانی بگذاریم. دوچرخه سواری آن موقع خیلی بین بچه هایی شهرک گل کرده بود. من و دیر به درگاه رسیدیم. بیست سی تا دختر و پسر که ماشین باباهاشان را کش رفته بودند، آمده بودن پیست. فراموش نشدنی بود. خیلیهاشان حتی گواهی رانندگی هم نداشتند. وقتی بچه ها سویچ ها و کارت ماشین ها را سپردن به دختری که نمی‌خواست مسابقه بدهد و آمده بود داور بشود، تازه فهمیدیم چقدر ماشین آمده. نفر اول یک دست کلاه و لباس چسبان دوچرخه سواری جایزه می گرفت. سامان آرمسترانگ حمید بهداد تو بودی که توی مسابقه اول شدی. حالا شاید یادت نباشد. اگر به ذهنت فشار بیاوری شاید تصویر محوی از آن بعد از ظهر یادت بیاید. اما من لحظه به لحظه مسابقه یادم است. من و نسیم با چند دختر دیگر حتی به خط پایان هم نرسیدیم. اما تو رسیدی؟ چهار بار دور دریاچه و هرکی زودتر رسید. در آن مسابقه تو اصلا من رو ندیدی. ولی من صورت تو را به خاطر سپردم. بچه ها دوچرخه هاشان را رو روی هم گذاشتند و تو از کوه دوچرخه ها بالا رفتی و دوستانت برای شوخی وومبمه های دوچرخه هاشان را به طرفت پرتاب کردند. سامان تو قهرمان من شدی. قهرمان ما، منو نصیم. بعدن رفتی آموزشگاه مداد سفید برای کلاس کنکور هنر. نسیم هم کلاسیت بود و کلاق خبرچین من. قهرمان در همه ی آزمونهای جامعه اول می شود. قهرمان باهوش سپید سپیده است که در آموزشگاه برای قهرمان ما تیک محسوس می زند. سپیده را هیچ وقت نمی بینم. قهرمان رتبه هفته کنکور هنر می شود و رشته عکاسی انتخاب اولش است. قهرمان میخواهد یگانه باشد. نه طراحی صنعتی نه گرافیک و نه حتی سینما از قهرمان دور می شوم. خواهر نیما فقانیم و نمیتوانم زیاد به پسرها نزدیک بشوم. برای خودشان دردسر می شود. همه من را در شهرک میشناسند و به گوش نیما میرسانند. شهرت منفی شب‌های تابستان همه با دوچرخه های و سامان با دوچرخه آلمانی قرمزش ویراژ می دهند در خیابان اصلی شهرک. نیما به من گفته هر جا باشم باید ساعت هشت بروم خانه. دارم در حسرت دیدن قهرمان می سوزم. دانشگاه که قبول میشوی دیگر توی شهرک آفتابی نمیشوی. دوچرخه سواری از سرت می افتد. ما به خاطر شرارت های نیما از اکباتان می دفیم. خداحافظی با نوجوانی قمنگیز است. ساختمان های یک دست شیشه و بتن و وسط آن همه درخت همیشه سبز مثل دوست قدیمی من هستند وسط پارک های شمال شهر. با قشنگترین ترین پارک زندگیم خداحافظی می کنم. با شیشه و بتن تون سامان من دیگر نمیخواهم ناشناس بمانم تا تو وسط مهمانی چه میدانم از چشم و ابروم خوشت بیاید و بعد اعتماد به نفست بالا برود که بی درد سر شماره گرفتی من ناشناس آشنایم سامان یکی از همین نداها نیستم که اگر در سایت ثبت احوال سرچ کنی و به کانتر سایت نگاه کنی بفهمی یکی از چند هزار دختر تهرانی است که اسمشان نداست نمیدانم شاید اگر تو هم یکی از همین چند هزار سامان ولو توی شهر بودی برایم بهتر بود، بی بیخاطره؟ بی خاطره، هرچند که تو خاطره‌ای از من نداری، من تو را می ولی تو من را نمی شنستی. وقتش است دوباره دو چرخه آلمانی قرمزت رو از گوشه انبار در بیاوری. حتما هنوز می توانی بدون دست دوچرخه برانی و رکاب بزنی و دوربینت را دور گردنت بیاندازی و با دستهای آزادت از شهر و شهرک عکس بگیری. از این به بعد با دوچرخه بیا دنبال من. من روی میله بین تو و فرمان دوچرخه می نشینم. با هم می هر پارکی که تو خواستی. نیما دیگر به تهران بر نمی گردد. پدر مستندسازم هنوز مستندهای های نیمه کاره می سازد و مادرم هر روزش را با فحش و فضیحت به نیما شروع می کند. درسم سال بعد تمام است. اگر بخواهی میآیم اتولیه ملکه خاکستری و می دستیار تو و نجات. چرخه سواریت که حرف ندارد. امشب ببینم رانندگیت چطور است. هنوز هم کلاه فلزی را که شکل چغال بادام بود داری؟ آن لباس و چسبان را چطور خودش است سامان است پلیور سیاه سیاه یپسکی شلوار جین کاپشن تنش نیست از بالای پانل پلاستیکی دارم می بینمش قبل از اینکه سامان بیاید هرم چوبی کوچکی روی میز را فشار می دهم. می خواهم سامان که میآید کمی بعدش خانم جوان پیشخدمت هم بیاید و منو کافه را برای من بیاورد. منوی زمستانی باید دلچسب باشد. سامان آستین های پلیورش را بالا زده و ساعت مچی بزرگش خودنمایی می کند. در شیشهای کافه را محکم به طرف داخل حل میدهد جلو در مکس می کند و چشم میگرداند تا توی شلوغی کافه میز مورد نظرش را پیدا بکند میز مورد نظر من هستم چه احساس دلچسبی میز مورد نظر بودن نفس نفس میزند انگاری مسافت زیادی رکاب زده باشد هنوز من را ندیده من اینجام قهرمان تهنشینم، یعنی همیشه طری کافه می میخواهم دستم رو بالا ببرم و بلند داد بزنم سامان حید از زده می بینم سامان جایی آمدن سمت میز مورد نظر مسیرش را کچ می کند و میرود نزدیک بار از من دور می شود دوره دور حتی نمیدانم من را دیده است یا نه. نزدیک بار با دختر و پسری که دست در دست هم نشستند خوش و بش میکند صورت دختر و پسر از اینجا پیدا نیست ستونی پنجاه در پنجاه جلو دیدم را گرفته از ماست که برماست کدام مهندس مستی وسط کافه ستونی به این بزرگی میگذارد سامان دیدن این دوتا واقعا از دیدن من واجب تر است حقش از خونم به جوش بیاید و کافر را عین فین فارسی ها به هم بدیزم. بروم سندلی های چوبی و کوتاه و سنگین کافر رو روی سر آن دختر و پسر خرد و خاکشیر شیر کنم. دختر بنشین سر جاد. جایی این کماندو بازی ها به فکر این باش که چجوری شب گلستان را از دل سامان در بیاوری. همیشه نباید چیزی که تو می خواهی بشود. اما خود این رفیق بازی بعد از یک عالم تأخیر واقعا نوبر است. سامان خان، واقعا نوبری. توی چله زمستان میوه نوبرانه ای. بگویم چه میوه ای. ترجیحن میوه ای تابستانی. آلبالو یا گیلاس؟ آلبالو و گیلاس به اتفاق آرا تصویب می شود. پسرک؟ چشمهات هم امشب حسابی البلو گیلاس می چیند. آمدی توی کافه و سی درجه کلی مبارکت را دور گردن مبارکت چرخاندی و من رو به این گندگی پشت میز مورد نظر ندیدی؟ ته کافه نشستم که باشم. این که دلیل نمی شود. اگر دلیل می شود، هیچ کافه ای را با ته نمی و کافه ها را بی سر و ته می ساختند. تو باید با چشمهای بسته هم را به سمت میز مورد نظر پیدا کنی چون من خیلی خودخواه و حسودم پسرک پس حس ششم به چه دردی میخورد از همین الان بگویم من از آشقهایی که جای حس ششم به حواس پنجگانهشان اعتماد میکنند بدم میآید. آبم باهاشان توی یک جوب نمیرود نبین نشنو نکش. لمس نکن مزه مزه نکن اما هر جور شده من را هر جای که هستم پیدا کن پیشنهاد می از نیروی تخیلت کمک بگیری ولی قبل از استمداد از نیروی خیال باید با آن شنگول و منگول خداحافظی بکنی و بیایی پیش عروسک سخنگود پیش حبه انگور فقط چند قدم با میز مورد نظر فاصله داری و انسانیت حکم می کند فاصله ها را پر کنی پسر خوب مامان بشوی و کاری نکنی مامان به سرش بزند توی کافه سلیته بازی راه بیاندازد. از حامد بهدت که نباید فقط نامهربانی و بداخلاقی یاد بگیری، نوجوان جان من. تقصیر این سینما هاست. همش فیلم هایی که بدآموزی دارن روی پرده میبرند. تربیتت میکنم نوجوان جان. شب دراز است و من به عنوان اولین قلندر زن انسانیت بیدارم. شب بیست و هفتم دی تربیت اصولی قهرمان خانم ایکس این سختی ها در راه عشق خیلی طبیعی است. سامان خسته شدم بس که با خودم حرف زدم و عین پیر ها با دو تا میل بافتنی چرند و پرند بافتم. سامان بیا بیا و توی سینه عروسکت بخواب. فشارش بده تا برایت آواز بخاند. امروز باتری های نو انداختم توی خودم. عاشقت بشوم جواب پدر مادر هم را تو میدهی پسرک؟ حالا که این توریست به دوست جانهای میگویم بریزن سرت و حالت را درست و حسابی جا بیاورند. زندهشان میکنم. توشان فوت میکنم و آنها یک دست و پا در میآورند و میآیند آیند سر وقت و دمار از روزگارت در میآورند. الهی بمیرم، این چه حرفی بود که از دهانم پرید. بیا، حامد بهداد از بوتیک بیرون بیا. سال به سال این شنگول و منگول را نمیبینی و حالا رفتهای ور دلشان ای که چی بشود؟ خلوت آشغانهشان را به هم زده ای و عین عجل معلق آنها را توی خماری لمس دست ها و چسباندن زیرمیزی پاها به هم نگه داشته ای. نبز رگ حسودی دارد هزار و تا توی سانیه میزند. بیا بینشین کنار بخاری پلاستیک آب کن تا گرمت بشود.